ای خرم از فروغ رو خطلال زار عمر بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر از دیدگر سرشک چو باران چکد روازد کندرغمت چو برد بشد روزگار عمر این یک ددم که مهلت دیدار ممکن است در یاب کار ما که نپیداست کار عمر تا کیمه می و شکر خواب بام داد حشیار گرد آن که گذشت اختیار او دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد بیچار دل که هیچ ندید از گذار او اندیشه از محیط فنا نیست هر کرا بر نقطه دهان تو باشد مدار آن در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهیست زان رو انان گسسته دوانت سوار او بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار روز فراغ را که نه در شمار او حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار او